بیرونه یه دهکده جایی که نرگابا در چراگاه می‌چریدن و خوکا توی شیارای شغب زده زمین پوزه هاشونو فرو می تا ریشه گیاه یا پیدا کنن خونه ای قرار داشت توی این خونه مردی با زن زندگی می کرد زن همیشه اندوهگین بود یه روز صبح شوهر پرسید چرا هر روز اندوه گینی و مثل شاخه یه گل سرخ پژمرد سرت بزیره؟ هرچی می داری؟ چرا مثل زنای دیگه شاد و سر حال نیستی؟ زن گریه کرد و گفت: دست از سرم بردار دنبال دلیلشم نباش؟ شوهر متوجه شد که بهتره سوالی نپرسه پس سر کار خودش رفت البته اون نتونست بی خیال این مسئله شد. چند روز بعد دوباره علت غم و غصه زنشو پرسید. اما همون جوابو گرفت. ولی اون ولکن نبود. سرانجام از بس بیتاقت شد بار سومم هم سؤالش تکرار کرد. زن که حسله سر رفته بود این بار سفره دلشو باز کرد. او گفت خدا خیرت بده. چطور نسبت به مسائل دور و برد اینقدر خیالی و به اونچه میگذره توجهی نمی کنی؟ اگه حرف درمو بزنم تو هم مثل من اندوهگین میشی پس اگه میخوای به درد سر نیفتی بهتر چیزی نپرسی و چیزی ندونی اما هیچ مردی از چنین پاسخی راضی نمیشه؟ هرچی از یه مرد بخوای زیاد تو چیزی رو نگیره حس کاویش بیشتر تحریک میشه. بالاخره زن گفت خب اگه قراره بدونی میگم. توی این خونه همه چیز رنگ ماتم داره. شوهر گفت مگه گاوامون بهترین گاوای شیرده در دهکده نیستن؟ آیا مزرعه ذرت کسی بهتر از مزرعه ذرت ماست؟ جدا که یابه میگی و قدر این همه نعمتو رو نمیدونی. زن گفت، بله، هرچی گفتی درسته، اما مهم بچه است که نداریم. اینجا بود که استن متوجه همه چیز شد و موقعی که مردی پی به چیزی ببره و از اون آگاه بشه، دیگه آرامش نخواهد داشت. از همون روز تو خونه کوچیک بیرون ده کرده، دو موجود کوچیک غنگین و سر به زیر زندگی می مردی اندوهگین و زنی اندوهناک طوری شد که زن با دیدن چهره درهم و برهم شوهر بیشتر اندوهگین میشد. شد مدتی اوزا و احوال به این ممبال گذشت بعد چند هفته گذشت و استن به فکر افتاد با مردی دانا که در جای دور از خونه خودشون زندگی میکرد مشورت کنه اون همون شب به راه افتاد و صبح به اونجا رسید. مرد دانا کنار در خونش نشسته بود که سرکله یه استن پیدا شد. اون به پاهاش افتاد و نالان گفت سرورم به من بچه بده. سرورم ما رو بچه دار کن. مرد دانا جواب داد حواست هست چی میخوای؟ فکر نمیکنی با بچه دار شدن؟ کمرت زیر بار مخارجشون میشکنه. آیا به اندازه کافی پول داری که خرجشون رو بدی؟ استن گفت سرورم تو فقط ما رو بچه دار کن بقیهش با خودم. مرد دانا با علامتی که داد اونو مرخص کرد. غروب همون روز استن خسته و کوفته، اما با قلبی روشن و پرامید به خونه رسید. نزدیک که میشد سر و صدایی به گوشش خورد و حیات که رسید خودش خودشو پر از بچه های قد و نیم دید بچه ها توی باخچه، توی حیات، تو درگاه پنجره ها و همه جا بودن انگار تمام بچه های دنیا اونجا جمع شده هیچ هیچیک از دیگری بزرگتر نبود اما هر کدوم کوچکتر از دیگری بود همون که گفتم قد و نیم قد. همه بچه ها شیطون و بلا شلوغ و خرابکار بودن و اصلا نمیشد گفت که یکی از دیگری آرومتره. تره استند خوشگی زده بود و از ترس می لرزید. وقتی فهمید اونا بچه های خودشونن چیزی نمونده بود که قالب تویی کنه بعد که به حال اومد با خودش گفت حکمت تو شکر خدا چقدر زیادن این همه بچه کجا بود؟ زن در حالی که بچه ها به دامنش چسبیده بودن و سر و صدا می کردن بیرون اومد و با صدای بلند به شوهرش گفت خدا نکنه یکیشونم کم شه. اما اون متوجه نبود که نگهداری صد بچه کار آسونی نبود. ظرف چند روز هرچی غذا تو خونه بود ناپدید شد و دیگه چیزی برای خوردن باقی نموند. صدای گریه و جیغ بچه ها تموم خونه رو برداشته بود. از همه طرف صدا می اومد بابا گرس من هم گرست نه. استن سرشو خاروند و فکر کرد تا چاره ای پیدا کنه. اون اصلا انتظار دیدن این همه بچه رو نداشت. اما چون زنشو خوشحال می دید، دندون رو جیگر می زاشت. حالا چطور شکم اونارو سیر کنه؟ و این چیزی نبود که بتونه دندون رو جیگر بذاره. گابا دیگه شیر نداشتن و فصل می به هم نبود. روزی به همسرش گفت زن چاره ای نیست باید بیرون برم و دنبال غذا بگردم. راستشو بخوای نمیدونم از کجا باید مقدار زیادی غذا جور کنم. آدم که گرسنه باشه کوتاه ترین راه براش طولانی ترین راهه. مخصوصا اگه کسی مجبور باشه شکم صد تا بچه رو سیر کنه استن همه جا رو گشت به همه جا رفت و به هر گوشه و کناری سرک کشید تا سر از انتهای جهان در آورد جایی که دیگه هیچ چیز سر جای خودش نبود اونجا بیراهه دید بعد به آقلی با هفت و گوسفند رسید توی سایه چند درخت بقیه یک گله لمیده بودن استن به جالو خزید و امیدوار بود چند تا از اونا رو به چنگ بیاره و به خونه ببره اما متوجه شد کار ساده ای نیست چون که نیمه شب سروسده های عجیبی شنید از دل آسمون اجده هایی پیدا شد که با خودش یه گوچ، یه گوسفند یه بر گاو می آور. علاوه بر اینا شیر هفتاد هفت, هفت گوسفندم با خودش آورده بود شیر و به آشیونش برد و به مادر پیرش داد تا خودشو شست وشو بده و جوون بشه اون وضل هر شب اتفاق میافتاد اجدها برای نگهداری از گرلش چوپانیو هم به اونجا آورده بود چوپان گریه و زاری میکرد اما بیفایده بود و اجدهها فقط میخندید استن متوجه شد که از اونجا نمیتونه برای قد و نیم قدای گرست غذا جور کنه. اون متوجه شد که نمیتونه با چنان حیولای گردن کلوفتی در بیفته. اما وقتی به فکر بچه های و دهان بازشون میفتاد، انگار به قلبش نیشتر فرو کردن. بالاخره به فکر چاره افتاد. اون به سراغ چوپون گله اجدها رفت و گفت اگه تو رو از دست اجدها آزاد کنم، چی به من میدی؟ چوپان گفت، یکی از سه قوچ، یکی از سه گوسفند و یکی از سه بره رو. استین جواب داد، خب، این یه معامله است دیگه. هرچند که نمیدونست چی کار باید بکنه. پیچه خودش فکر میکرد اگه پیروز بشه، یک گرله درست و حسابی رو میتونه به خونه ببره. این موضوع مربوط به بعد میشه تازه داشت شب میشد و اون باید بهترین راه مبارزه با اجده رو سبک سنگین میکند بازم درست در نیمه شب استن دچار حسی حراسناک شد که براش تازه و عجیب بود حسی که نمیتونست حتی برای خودشم که شده به زبون بیاره این حس وادارش کرد به فکر درفتادن با اجده نباشه و به کوتاهترین راه بازگشت به خونه فکر کنه. اما همین که به راه افتاد بچه های به یاد وورد و دوباره بازگشت. به خودش گفت تو یا من و جاپاشو کنار رمه محکم کرد. با شنیدن صدای عجیبی که دل آسمونو میشکافت ناگهان فریاد برآورد بس دیگه اشتها و اجدها از کنارش گذشت و گوشهی فرود اومد. هیولا با نگاهی به اطرافش قررش گلال گفت عجب تو دیگه کی هستی و از کجا پیدات شد؟ من استنبولوان هستم. کسی که هر شب سنگا رو میخوره و روزا هرچی گل و گیاه تو کوهستان هست فرو می بله. اگه تو این رمه رو رها نکنی کمرتو میشکنم. اجده ها با شنیدن این حرف وسط راه آروم و بی ایستاد. اون فکر کرد که شاید با همه خودش روبرو شده. هیول با صدای لرزون گفت اگه قصد مبارزه داری اول تو شروع کن. استن جواب داد چی؟ با تو به جنگم؟ من با یه پوف میتونم شق شقت کنم. این خم شد و تکه بزرگی پنی رو که کنار پاش گذاشته بود برداشت و گفت این سنگ می میبینی؟ حالا برو سنگی مثل اینو از کنار رودخونه بردار تا معلوم شه کدوم که از ما میتونه با فشار شیرش دراره. اجده رفت و سنگی به بزرگی تکه پنیر آورد استن پرسید آیا میتونی سنگ و با دستات فشار بدی و از اون شیر دراری؟ اجده ها سنگ و تو دستاش فشرد تا مثل گرد و خاک رو زمین ریخت اما شیر از اون جاری نشد اما نیمه خشگین گفت: «خب من که نتونستم استنگ گفت: « اما من میتونم و تکه پنیر رو اونقدر فشرد تا آب سفید پنیر که مثل شیر بود از میون انگشتاش جاری شد اجدها با دیدن این صحنه بهتر دید که به خونه برگرده اما استن سر راهش ایستاد او گفت ما هنوز یه خورده حسابایی داریم اصلا تو اینجا چیکار کار میکنی؟ و اجدهای بیچاره از ترس اینکه استن با یک فوت اونو شقه شقه شق کنه تو چراگاه کوهستانی تو بستر گلاخاک کنه به خودش میلرزی. بالاخره اجده ها گفت، گوش مرد دلیر، تو آدمه به درد بخوری هستی، مادرم به آدمی مثل تو احتیاج داره. اگه سه روز براش کار کنی و مراقبش باشی، به اندازه یک سال پا حساب میکنه، و بابت هر روز هفت کیسه سکه به تو میده. سه روز هفت کیسه پر از سکه؟ پیشنهاده وسوسه انگیزی بود و استن نمیتونست راحت از کنارش بگذره. اون زبونشو خسته نکرد تا حرفی بزنه. پس سرشو به نشونه موافقت تکون داد. اونا به راه افتادن و نزد مادر ها رفتن. اون به اندازه گذشته زمان پیر و سال خورده بود. چشمش از همون دور مثل دو چراغ میدرخشدن. وقتی وارد خونه شدن، کتری بزرگی پر از شیر رو آتیش بود. مادر اجدها که دید پسرش دست خالی برگشته، عصبانی شد و از دو سوراخ گوش بینیش آتیش بیرون داد. و پیش از اینکه حرفی بزنه، اجدها رو به استن کرد و گفت: "همینجا بمونو منتظرم شو." خودم همه چیزو برای مادرم توضیح میدم. استن تقریبا از این که پاش به چانان جایی باز شد به شدت پشیمون بود. اما حالا اونجا بود و راه برگشت نداشت. پس بهتر بود طوری رفتار کنه تا معلوم نشه که ترسیده. همین که اجده و مادرش ما تنها شدن به اون گفت گوش کن مادر این مردو به اینجا ووردم تا از شرش خلاص بشیم. اون آدم خطرناکیه. چونکه سنگ میخوره و می تونه با فشار اون شیر بیرون بریزه. و هرچی رو شب قبل اتفاق افتاده بود تعریف کرد. مادر گفت: فقطتونو پیشم بزار، امکان نداره کسی بتونه از چنگم در بره. و استن مجبور شد پیش مادر اجدها بمونه و براش کار کنه. روز بعد مادر اجدها گفت، دوست داره به فهمه بین اونو پسرش گدون قوی تره. اون چماقه بسیار گنده ای و که هفت مرتبه در اون آهن به کار برده بودن به زمین انداخت و گفت هرکی تونست اونو بلند کنه و پرتاب کنه قوی تره. اجده اونو به راحتی بلند کرد. انگار یه پر رو برداشته بود. اون چماقو دور سرش چرخوند و بعد چند کیلومتر دورتر پرتاب کرد. حالا نوبت استن بود که با چماق دست و پنجه نرم کنه. اونا به جایی که چماق افتاده بود رفتن. استن خم شد که اونو تکون بده. ترس تموم وجودشو فرا گرفته بود. چون که میدونست که با کمک صد بچهش هم نمیتونه اونو تکون بده. اشتها پرسید، پس چیکار کنی؟ او گفت داشتم فکر میکردم که چه چماق زیباییه اما میترسم که این چماق باعث مرگت بشه اجدها پرسید منظورت چیه؟ استن گفت میترسم اگه برش دارم و پرتاب کنم فردا رو نبینی تو که نمیدونی من چقدر زور دارم اجدها گفت فکر مرگ منو نکن زود باش برش دار رو پرتاب کن استن گفت حالا که اینقدر جدی هستی باشه اما بزار برم مقدمات سروز جشن و فراهم کنم بازم به نفته چون که دست کم دیگه هم زنده میمونی. استن با چنان خون سردی حرف زد که اجده ترسید. ترسید هرچند که باورش نمیشد، چون این اتفاق وحشتناکی پیش بیاد اونا به خونه بازگشتن هرچی خوردنی و نوشیدنی تو گنجه مادر اجده بود برداشتن و به جایی که چما گفتاده بود بازگشتن. استن روی کیسه خوردن یا نشست و با آرامش خاطر منتظر بیرون اومدن ماه موند. اجده پرسید داری چی کار میکنی؟ استن گفت منتظرم ماه از سر راهم کنار بره. اجده پرسید منظورت چیه؟ من که نمیفهمم. استن گفت: « نمی بینی که ماه درست سر راه هم قرار گرفته خب اگه اینقدر رجله داری چماق توی ماه میندازم. با شنیدن این سخنان نجدهها کمی ناآرام شد. اون چماق برداشت و پیش خودش نگه داشت. اون میراث پدر بزرگش بود و براشون خیلی ارزش داشت. و اصلا دلش نمیخواست که توی ماه گم بشه. اون پس از کمی فکر گفت گوش کن چی میگه؟ نمیخواد شما بلند پرتاب کنی. خودم از طرفت پرتابش میکنم. درست به خوبی پرتاب اول. استین گفت نه، اصلا حرفش هم نزد. فقط سب کن ماه کنار بره. اما اجده که باز هم در حراس بود اون تهدیدشو عملی سازه، سعی کرد با وعده و وعید اونو از این کار باز داره و قول داد که هفت کیسه سکه به اون بده تا چماقو توی ماه نندازه. اجده رو به مادرش کرد و گفت آه مادر جان، اون واقعا قویه. باورت میشه که با هزار زحمت تونستم مانش شم، تا چماغ توی ماه نندازه؟ اجده های با شنیدن این حرفا نگران و بیتاب شد. اون سخت به فکر فرو رفت. انداختن چماق یا هر چیز دیگه تو ماه چوخی نبود. دیگه حرفی از چماق زده نشد و روز بعد به فکر راه و چاره دیگه ای افتادن. صبح که شد، مادر اجده گفت، برید برام بیاری. و به هر یک دوازده مشک پوست گاو میش داد که تا شب اونا رو پرازاب کنن اونا به طرف رودخونه رفتن اجده توی چشم به هم زدن همه مشک رو پر پرازاب کرد و به خونه برد. استن خسته بود اون به زور میتونست دوتا تا و حتی موقعی که خالی بودن حمل کنه چه برسه به پر باشن اون کاردی کهنه از جیبش در آورد و زمین نزدیک رودخونه رو کند. اجدها پرسید چیکار کار میکنی؟ چطور میتونی آب رو به خونه ببری؟ اون جواب داد چطور؟ اینکه که کاری نداره میخوام رود و به خونه ببرم. با شنیدن این حرف زبون اجدها بند اومد. این رودخونه از زمان پدر بزرگش اونجا جاری بود. اجدها گفت مشکای آب و خودم برات به خونه میبرم برم. کاری به رود نداشته باش. استن گفت اصلا هر هم نزن و همچنان سرگرم کندن زمین شد. بازم هم ها هرسون شد و در صدد بر اومد که با دادن هفت کیسه سکه به اون مانع این کار بشه. استن کوتاه اومد و رود و رها کرد. روز سه مادر اجده ها استن و برای اووردن چوب به جنگر فرستاد. اجده ها هم همراهش رفت. قبل از سه سود، اجده ها تعداد زیادی درخت رو به زمین انداخت. اگه قرار بود استن این کار بکنه، باید تموم عمرش رو صرف این کار میکرد. کار اجده ها که تموم شد، استن نگاهی به دوروبر خودش کرد و سراغ بلندترین و تنومندترین درخت رفت. بالا رفت و درازترین این شاخه تاک وحشی و که بریده بود به بالاترین شاخه درخت تنومند گره زد و سر دیگه شو به درخت کناری بست. اون اون کارو با یه ردیف کامل از درخت انجام داد. اجده پرسید چی کار می اون جواب داد خودت که می بینی و به کارش ادامه داد. اجده پرسید حالا چرا درخت رو به هم می بندی؟ او گفت من حوصله یه کارهای غیر ضروری رو ندارم. با این کار وقتی یکی از درخت رو از جا بکنم بقیه هم به دنبالش از جا کنده می شد. پرسید حالا چجوری می خواهی اونا رو به خونه ببری؟ استن گفت ای وای از دست تو مگه متوجه نیستی که می تموم جنگل رو از جا درارم. و در حال صحبت دو درخت دیگر رو نیز به هم بست. اجده که از فکر از جاکنده شدن جنگل از ترس می لرزید با فریاد گفت ببین چی میگم، بزار سهم چوباتو خودم می خونه ببرم. هفت کیسه سکم به تو میدم اما کاری به جنگل نداشته باش. استنگ گفت تو اجده های خوبی هستی. منم با این پیشنهادت مخالفت نمی کنم. و اجده چوبارو به خونه برد. حالا سه روزی که اون قرار بود به مادر اجدهها خدمت کنه تموم شده بود. طبق قرارشون این سه روز کار برابر با یه سال کار بود. اینک تنها چیزی که ذهن و درگیر کرده بود این بود که چطور کیسه های سکه رو به خونه ببره. اون شب اجده و مادرش با هم تا دیر وقت حرف زدن و عقلشون رو روی هم ریختن، که چه بکنن؟ استن بالگووش ایستاده بود و از شکاف سخت کلمه به کلمه حرفشونو شنید اجدها گفت: «مادر عجب بلایی به سر خودمون آوردیم این مرد خیلی زود به ما چیره میشه و ما رو بردهی خودش میکنه پولش رو بده تا به خونش برگرده. اما مادر اجدها که دلش نمی اومد از پولش جداشه با این کار مخالف بود اون گفت گوش کن همین امشب سرش رو زیر آب کن اجده جواب داد من میترسم، ترسم رو ندارم اجده های پیر گفت بی خود نترس وقتی خوابه با چماغ به سرش بکوب به همین سادگی اگه استن حرفاشون رو بود کارش ساخته بود وقتی چراغای خونه مادر اجده و پسرش خاموش شد استن تاغاره چوبی غذاخوری خوری خوکا رو برداشت، اونو پر از خاک کرد و توی بستر خودش گذاشت. بعد با چندتا تا ملافه روش و شد. خودش زیر تخت قضید و با صدای بلند خور رو پف سرداد. خیلی زود اجده یواشکی وارد اتاق شد و با چماغ به جایی که فکر میکرد سر استن باشه، ضربه کوبنده فرود آورد. استن از زیر تخت نالهی دردناک سرداد. اجده ها همونجور جور که آروم اومده بود، آروم بیرون رفت. در اتاق که بسته شد، از زیر تخت بیرون اومد، تاقا رو از روی تخت برداشت و گوشهی گذاشت، تخت و مرتب و تمیز کرد و دراز کشید. اما اونقدر عاقل بود که اون شب چشماشا نبنده. صبح که شد موقعی که اجدهها و مادرش داشتن صبحونه میخوردن اون به اتاقشون اومد و گفت صبح بخیر اجدها و مادرش مات و مقبوت و ناباورانه گفتن صبح تو هم بخیر دیشب راحت خوابیدی؟ استنگ گفت خوب خوابیدم اما تو خواب دیدم که یک کک منو نیست زده به نظرم میاد که خواب ندیدم چون هنوز جای نیشش رو احساس میکنم. اجدهها و مادرش نگاهی به هم انداختن. اجدهها زمزمه زمزم کنان گفت، شنیدی چی گفت، من با چماق به سرش گفتم، اما اون از کک صحبت میکنه. این بار مادر اجده هم مثل پسرش حراسون شد، راستی نمیتونستن از پس اون مرد بر بیان. اون تمام کیسه ها رو پر از سکه کرد تا هرچه زودتر از شر استن خلاص شد. اما راستش رو بخواید استن از ترس مثل بیت می لرزید. اون نمی حتی یکی از کیسه ها رو از زمین بلند کنه. اجده ها پرسید پس چرا استادی؟ بیا پولاتو بردار. استن گفت من از اینجا نمیرم. چون که میخوام یه سال دیگه هم اینجا کار کنم. خجالت میکشم با این مقدار پول به خونه برگردم. خونوادم حتما خواهند گفت که چقدر کم پول آوردم. مطمئنم که همه میگن استنبولوان رو نگاه کنید. اون با اینکه یه سال بزرگتر شده به اندازه یه اجده ها زعیفه. با شنیدن این حرف نومیدی و ترس تو وجود اجده ها و مادرش رخ کرد. به طوری که حاضر شدن هفت برابر هفت کیسه سکه به اون بدن تا بره. اشتها هراسیده بالاخره سیده استن گفت حرف دلمو رو میزنم. اینجور که قیافتون نشون میده دوست ندارید اینجا بمونم و کار کنم. خیلی ناراحتم که شما فکر میکنید به درد نخورستم. همین الان میرم. اما به این شرط که فسرت کیسای پولو به خونم ببره. اینطوری پیش خانوادم شرمنده نمی هنوز حرفش تموم نشده بود که اجده یکی یکی کیسه ها پشت خودش گذاشت و استن برداشت و به هوا برخاست. راه اگرچه با پرواز اجده ها زیاد دور نبود. اما به نظر استن خیلی طولانی اومد. سرانجام اون از همون دور سرسدای بچه هاش رو شنید. کمی درنگ کرد. چون که دلش نمیخواست اجده ها به که اون کجا زندگی میکنه. مبادا یه روز برگرده و گنجش رو باز ستانه حالا باید یه جوری از شر این هیولا خلاص میشد. ناگهان فکری به سرش زد و دروبرش رو نگاه کرد. او گفت واقعا نمیدونم چیکار کار کنم. من ست بچه دارم و میترسم با دیدنت بهت آسیب برسونم. اونا همیشه آماده ی جنگ هم. و از تمام سعیم و میکنم که به تو صدمه نزند. اشتها خودش فکر کرد، صد تا بچه، این واقعا شوخی نیست. و از ترس به خودش لرزید و کیسه از پشتش پایین افتادند. اون خواست دوباره اونا رو جمع کنه که همون موقع بچه ها که از زمان رفتن پدرشون تا اون موقع غذای درست و حسابی نخورده بودن، با کارد در دست راست و چنگال تو دست چپ به طرفش ویرش بردن و فریاد کنان گفتن ما گوشت اجده ها میخوایم. ما گوشت اجده ها میخوایم. اجده با دیدن این منظره وحشتناک درنگ و جایز ندید. قیده کیسه های سکه رو زد و از همون جایی که فرود اومده بود بالاشو باز کرد و به پرواز در اومد و به سرعت از اونجا دور شد.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 کانال تلگرامی هزار افسان افثان. داستان های افسانه صوتی